یا بهتر اینجوری بگم اینجا رادیو 18 بنفش بچه سال مهربونه که سعی داره موجود خوبی باشه باشهولمو بده بالا کلاس دوم دبستان که بود، یه روز آقاش اومد خونه و گفت از امروز باید داری سر چاره اسکاش بفرشه. باید خرج خودتو دراری. وگرنه اگر نمی نظمت از خونه بیرون. قولمالی هم ترسید. آخه فقط هشت سالش بود. مادرش هم مثل آقاش معتاد بود. اون میترسید آقاش از خونه به بیرون. نه اینکه گمون کنید خونه یه قصد دلگشا باشه با یه باقی پر از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 کار ناماش گرفته بود همه درساشم هم بیت شده بود. اون روز آقاش اومد و یک کیسه پر از اسکاش سبز زمخت و انداخت جلوش کیسه از خودشم بزرگتر بود. آقاش گفت تا اگه نصفشون نفروخته باشی خودتم خونه قلامری رفت و از حجت که با برادرش توی یکی از خونه حل زندگی میکردن پرسید که باید کجا بره تا اینا رو بفروشه؟ حجت پسر بدی نبود. دستشو گرفت و برد و سوار واحد کرد.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 بیشتر بچه ها وقتی دنیا میان تا وقتی مثلا دوسه ساله میشن، خاطره ای تو ذهنشون باقی نمیمونه. به قول بیبی خانوم خدا نمیخواد که خاطره از اون زمان تو کلشون بمونه. بیبی خانوم میگه اون زمان بچه ها خدا رو میبینن، فرشته ها رو میبینن، جن و پرییا رو میبینن، حتی چهره های آدم ها رو همونطور که دیشونه میبینن. برای همین خدا هم ذهنشونو تا قبل دوسه سالگی پاک میکنه.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 توی تنهایی و غربت میونه این همه صلوت من رو سکه تو بودم توی این اتاق خلبت با تموم بی کسی هم با همه دل بستگی هم یه شب برام نوشتیم که میری از دل چشم وقت 10 سالگی تو هی تو رو نگات می کردم با زبون بیزبی هی تو رو صدات می کردم <موسیقی> اما؟ دوباره یه کمی ننگام می کردی من ساده فکر می کردم دوباره بهم به می خندی بعد پنج سال قبل دوری اومدی روش سرراغم منو تو کماد گذاشتی دو دل سیاهی و غم حالا چهل سال که اینجا خیلی حس خیلی تنها لباسام یه کم چ که پرره خاک تو نفس تا یه روز یه نوری اومد من لایه در یاششیوا شد صورت یه بچه بود و مثل و شد. منو آهسته بقل کرد توی دستای زریفش انگاری بود همه دنیا توی آقوش لطیفش یه صدای آشنایی توی نور نصف نیمه می گفت ای وای این روزک مال وقت بچگی کم کم همه جا داشت پر از رنگ و نور میشد. خونه های مرمری، مغازه های پر از عطر و بوی غذا، لباس های رنگ و وارنگ. اون همیشه ها غموم می تموم مادر پدرای دنیا همینجوری شبیه مادرپدر پدر و واقعی همزاقه یاشه تا شب وقت برگشت، همون زمانی که حجت بهش گفته بود حتما باید برگرده وگرنه اتوبوسا تموم میشن، محفل تماشای دنیای تازه‌ای بود که پاک حواسش از خودشو، آقاشو اسکاچاش پرت کرده بود. فقط 6 تا فروخته بود. پولش و شمرد که حوجت به داده بود و دستش گرفت و باز سوار واحد شد تا برگرده خونه. چند ساعت بعد تو تاریکی وقتی رسید دم در خونه، آقای معتادش گرم کنه پاره چرکمونون انداخته بود رو دوشش و دمه در منتظر اون واستاده بود کیسه روز زمین گذاشت و با آقاش نگاه کرد. دست کرد تو جیبشو اون چند تومانی که درآورده بود و داد به آقاش. آقاش سیگارش و کف دست کوچی اون خاموش کرد تاش بخواین اون اصلا دردش نیوم چون تو فکر اون همه نور و قشنگی بود که اون روز دیده بود.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 دیگه نه پدری بود نه مادری و نه حتی خونه‌ای. چند وقت تو خاکسترهای پدر و مادرش بود. ولی یه روز تصمیم گرفت دیگه بر نگرده. کل شهر رو گشت تا یه کار و جای خواب پیدا کنه. کسی به اون کار نمیداد آخه فقط یه شناسنامه سوخته داشت و یه کیسه اسکاش و یه دست لباس که حالا خیلی همو گرفته بود. از همه مهمتر سن کمش و بی سواد بودنش بود. یه مدت زیادی رو توی خرابه میخوابید کنار آدمای که بوی باباش بچه ها وقتی آدم بزرگ میشن بیشتریاشون اروسکه رو یادشون میره به خاطر جبر نیست. بلکه خودشون میخوان در بیشتر مواقع. یعنی البت اصلاف فکرم نمیکنم به اینکه که میخوان فراموش کنن یا نه. یه جورایی انگار باید فراموش عروسک یه قانون نانوشته است. اتومات زمانش تموم میشه و میره پیکارش کارش. ها موجودات مهم میان. البت نه برای همه بچه ها. بین همون بچه هم یه سریا هستند که کلن از همون بچگی تفکرات آدم بزرگونه دارند. بعضی هستن که اونقدر دور برشون پر از آدمی زاده دیگه که عروسک از همون اول فقط حکم یک شیل رو داره براشون. ولی برای بعضی از اون بچه ها عروسک تنها سرمایه و تنها رفیق و تنها هم یک روز که داشت از یک خیابون میگذشت یک کارگاه عروسک سازی دید. در نوشته بودن به یک کارگر ساده نیازمندی. صاحب کارگاه یک خانم بداخلاق بود. بعد از اینکه قلمعلی داستانش رو براش تعریف کرد، خانم بدخلاق اجازات اونجا بمونه. شب اونجا بخوابه و یه جورایی بشه پادوی اون کارگاه عروسک سازی. تا اون روز قلمعلی عروسکی اینقدر از نزدیک ن بود. این عروسک ها حس جدیدی رو در اون زنده کردن، یه حس غریب، شکل ای از بچگی که چند سال پیش و خیلی زود ازش گرفته شده بود. شب که همه می رفتن با فکر جسدای سوخته پدر و مادرش و تنهایی‌اش تنها می شد. توی اون زمانا کاری که ازش برمی اومد گریه کردن بود. چند ماه گذشت و غلامعلی ساکت اونجا مونده شد. صاحب کارگاه شوا درو به روش قفل می‌کرد و میرفت. شاید می‌ترسید یه شب کل کارگاهو بار کنه و ببره. غلامعلی اون شب هم داشت گریه می کرد. یه تصمیم خیلی واقعی گرفته بود. حتی یه تنب برای خودش جور کرده بود. یه حلقه چنگکی روی سقف کارگاه بود. رفت که تنبو بیاره. از صبح چشمی می‌کشید که همه می‌رن و اون با تنا بشه اون چنگک و چهار پای تنها میشه ولی يهوه روی زمین یه سر کوچولوی عروسکید جالب بود چون همه جا رو جارو زده بود اجازه نداشت دست به وسایل کارگاه بزنه اون فقط با تمیز می‌کرد کیسه‌های پشم شیشه و پنبه‌ها و پارچه‌ها و قطعات عروسک‌ها رو جابجا می‌کرد ولی اون شب لبخند عروسک نذاش که اون سر رو به توی سبد قطعات لب‌های عروسک جوری به غلامعلی لبخند می‌زدن که پاک یاد اش قرار بود اون شب چیکار کنه مثل گرگ گورگی گورستئی که که قضا پیدا کرده باشه و بترسه کسی ازش بگیره سر عروسکو کرد زیر بلوزش و رفت تو اتاقک کوچیک زیر پله کمال اون بود از یه گوشه اتاقک کیسه وسایلشو آورد فقط یه اسکاج براش مونده بود با نخ و سوزن و قیچی تا شب کلنجار رفت تا برای عروسکش یه بعدم بسازه اسم عروسکش شد قلام اسکاجی مثل یه گنج یا یه کالای ممنوع از قلام اسکاجی مراقبت می‌کرد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 زیر سایه ها شدی کجای این زندون شب تو بغز من رها شدی برای چی خواستن تو برای من یه حسرت لبا تو کی هست و گرفت زمین قربته عروسکا میتونن هر چیزی باشن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 چشمای من هر روز حرف میزنه همین این رو به روم روزی هزار بار میشکنه jemmer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 خانم بددخلاقه اولش داد و ویداد و گفت که قلامعلی یه بچه بوگندوی کارتون خواب بوده که اون بهش جا و مکان و کار داده و حالا روش زیاد شده. قلامعلی خیلی عصبانی شد، حتی میخواست از اونجا بره. ولی وقتی به قلام گفت لبخندی زد. همین کافی بود که بشینه تو عبدال خونه و هیچ چن نره. بعد چند ساعت خانم بددخلاقه اومد بهش گفت فردا آماده باشه که ببرندشو معرفیش کنم به این مرکز شبانه‌نویسی. توی اون لحظه خوشبخت‌ترین موجود روی زمین میدونست. این برای اولین بار بود که قلامعلی برای خودش تخت داشت، سر وقت قضا تنها تناکاری که ازش میخواستند درس خوندن بود. اونجا یه مرکز خیریه بود. همه بعض مالشون بد بود، ولی قلامعلی از خودش خودشو هیچ چی نمیگفت. توی اونجا هم قلام قایم میکرد. قلام از قلامعلی پر از ترس و استرس و کم‌حرف که صحنه جسدای سوخته پدر و مادرش و دردا و عقداش از توی سرش بیرون نمیرفت، یه پسر درس‌خون و مؤدب و حاضر جواب و دوست داشتنی ساخته بود. قلام تونست توی دو سال اون چهار سال عقب افتادگیش جبران کنه. قلام اسکاجی کاری کرد که اون کنار درس خوندنش برو نجاری هم یاد بکره. تو خوابگاه به صورت تمام وقت توی آشپزخونه کمک کنه. همین شد که مدیر اونجا اجازه داد تا زمانی که قلام کنکور بده توی مرکز بمونه. تابستون بود، صبح بود. قلام دست کرد توی متکاش و قلام درآورد، رو در آورد بدون لب زدن و اینکه صدای ازش دراد گفت برام دعا کن که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 6 سال گذشت و همین موجوده بی‌ارزش روح و جسم اون پسرک تنها رو از زوال نجات داد. شاید لبخند اون عروسک فقط یادآور آرزوها و خواستهای های بود به خودش. هرچی بود هیچ کس رازش رو نفهمید. هیچ کس نفهمید دکتر روانشناسی که همه برای وقت گرفتن از اون صف میکشن دستفروش سواد و زاده زاغه‌ای بود که توی خوابگاه های خیریه بزرگ شد و از ترس شب‌هان نشسته می‌خوابید. هیچ کس وقت نفهمید که اون عروسکی که آقای دکتر توی اون پوشش شیشه مثل چشمش ازش مراقبت میکنه یه شب گرم تابستون آقای دکتر اونارو به دنیا آورده اولموسکاچی حالا 36 سالشه و دیگه خسته تر از اونه که همش قایمشه حالا سالهاست که دو تا غلامای قصه ای ما فقط به هم لبخند میزنن و همین کاپیه برای اینکه هر دوشون یادشون بیاد که چه جوری آرزوهای همو زنده کرد کوچه های خام عروسک همدممل من بود چش یخزده شنگار تلوعه صبح روشن بود عروسک جسم بیجونه ولی حالو هوا داره برای این سکوت ثبت یه دنیای صدا داره اصلا میدونین چیه؟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 چون اونها تنها کساین که یاد آدما میارن که یه زمانی چقدر بی دلیل خوب و مهربون بودن. اینجا رادیو 18 بنفشی بود که حتی اگر بزرگ هم بشه سعی میکنه مهربون بمونه و هیچ وقت فراموش نکنه کسایی رو که باهاش رفیق بودن و بهش مهربونی کردند حتی اگر اون فرد یه حرسک بشه. کانال تلگرام ما هست رادیو 18 بنفش با 18 عددی ما رو از طریق این کانال و البته از طریق تارنمای بی و بخش پادکست های این تارنما تو اموال کنی دیدم که صح چشم تو ترسنده عروسه اسم می <متصفيق> خونم اگه هان برات تو چشم شیشه ای دیدم که صح چشم تو ترسنده من جنس زمین و خاک تو اما زاده ترمن تنم من سر دو یخ بسته تن تو ساده و گرم تو یاره خودکی های نگاه پاک و گهواره آمیشه با تو میخواستم برام تا آمدم قوچ و واره آروسا از تو می خونم اگه حال برات مونده تو چشمشی mich wie scheitsdida kesa just small to try sum day arusa asso mi khuna age haro waro tunde du tesch mich wie کتاب قسم دادرنگی پره گنجش که بیچهره قروره تیرکمون سنگی به چشمه بی نگاه تو شب و صبح ها سهر پاکه هنوز دستای کوچیکت از اشکان کیسونم ناکه گه حالی برات مونده تو چشمه شیشه‌ای چیدا که شب چشمم تو تار سونده عروسا تو می اگه حالی برات مونده تو چشمه شیشه‌ای دیدم که شب چشمم تو تار سونده عروسا حس تو میguna اگه حالی برات برات مونده تو چشم شیشیت دیدم که شم چشماتو ترسونده